السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز با تقدیم نمودن برنامه دیگی از برنامه های عقید اسلامی قرار دارم دوستان عزیز امروز خوب است که در مورد ایمان و اسلام در قرآن و سنت معلومات داشته باشیم که ایمان چی را میگن در لغت و در اصطلاح و اسلام چی را میگن اساسات ایمان چیست و اساسات اسلام چی هست و وقتی که اسلام میگیم یا ایمان میگیم یکی با دگه چی فرق میکنن ای چیزها را داری برنامه بفامیم اول خود دستان عزیز کلمه ایمان در زبان عربی به دو معنای اساسی استعمال میشه معنای اولش به ضد خوف استعمال میشه در شریف هست که و امنهم هم من خوف لِسُورِي قُرَيْش لِإِلَّا فِي قُرَيْش إِنْ إِلَّا فِي مَرْحَلَةِ الشِّتَاءِ من الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ إِنْ جَاءَ مِنْ خَوْفٍ إِنْ جَاءَ خوف و ترس استعمال شده يعني اينارا چی کرد؟ از خوف و ترس امان داد اینجا به امان دادن است و معنای دومی که ایمان استعمال میشه ایمان به معنای تصدیق است که به بزد کفر استعمال میشه وقتی که میگیم که در آیه شریف آمده است که و ما انتا به مؤمن لنا ولو کن صادقین اینجا و ما انتا مؤمن لنا و تو ما را تصدیق نمی ولو کن صادقین اگر چی ما؟ راستگو هستیم پس خلاصه ای که ایمان به معنای امن میه که بزد خوف و ترس استعمال میشه و ایمان هم به معنای تصدیق استعمال میشه که بزد کفر استعمال میشه از این خاطر ما وقتی که میگیم که افراد مؤمنین منظور ما امی کسانی هست مؤمن کسی که تصدیق میکنه آنچه که در قرآن هزی مشان آمده و ایره ما مؤمن میگیم ازی خاطر کلمه ایمان و کلمه مؤمن برای کس استعمال می کنیم که او کافر نیست بلکه با قرآن ایمان داره. ایمان در اصطلاح چیره میگن؟ در قسمت تعریف اصطلاحی ایمان علما چندین تعریف تقدیم کردن که از این جمله از این تعریفات دو تعریفش بسیار تعریف است که زیاتر در بین علما شهرت داره تعریف اولی است که ایمان اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب ایمان چی هست؟ اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است پس وقتی یک انسان مؤمن گفته میشه و مسلمان واقعی گفته میشه که در زبان اقرار بکنه و در قلب خود هم به او تصدیق بکنه و تعریف دومی هست که اونا باس برای ایمان سی بخش میتن اقرار به زبان، تصدیق به و عمل به جواره هست با اعضای بدن عمل بکنم. دی تعریف چیز هم داخل کردن خود عمله که اعمال انسان هم جز ایمان است. امام بغوی یک عالم است که صحابه و طابعین و بعد از آنان علمای اهل سنت اتفاق نمودن که عمل جز ایمان می باشد و گفتند که ایمان قول عمل و عقیده می باشد این کتاب شرح السنه هست که امی قولی که از امام بغوی برتان نقل شد به هر صورت آیا ایمان تنها اقرار به زبان و تصدیق بالقلب است و یا که عمل هم به امرای زو هست اگر آیات قرآنی را با دقت انسان تفکر و تدبر بکنه ارسیه زیر شامل میشه انسان مؤمن باید با آنچه که در قرآن شان آمده به اقرار به زبان بکنه تو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخری و القدر خیره و من الله تعالی و البحث بعد المؤمن و ایمان به همه یه چودا به قلب خود هم تصدیق داشته باشه. چرا اگر بر زبان بگوید و به قلب تصدیق نداشته باشه بازی منافق گفته میشه. اما اگر امی انسان به زبان اقرار کرد و به قلب هم تصدیق کرد لیکن عمل نکرد مثلا عبادت به زبان اقرار کرد و تدل هم تصدیق کرد بله الله واحد لا شریک است و مستحق عبادت است به زبان گفت و به قلب هم کرد لاکن عملا رفت بهش بوت سجده کرد آیا مؤمن گفته میشه؟ یا ایمان داره به زبان خود و به هم تصدیق داره که قرآن حق است لیکن عملا به قرآن استهزا میکنه از این خاطر علماء اسلام در یک قسمت باز میگن که اگر یک کس حضل و استهزا یک نفر میگه ما سبب به قرآن ایمان دارم و آنچه که اساسات ایمان از به با او باور دارم و قلبنم به او تصدیق دارم لكن مشکل چی است؟ میکن مشکل است که ای مثلا استحضا میکنه به دین قرآن شریف در مرداری ها میپرده پس همی عمل ازی دلالت میکنه که ای تصدیق به قلب نداره یا به بود سجده میکنه یا به سلیب سجده میکنه پس کل از دلالت علائم چی است؟ علایم مثلا به ای که این امین تصدیق قلبی واقعی نداره از خاطر عمل هم جزء ایمان دری قسمت میشه بخاطر خاطر ازی که انسان و مسلمان اگر زبان اقرار بکنه و به بقل... قلب تذیق تصدیق بکنه و عمل از مخالف اقرار به زبان و تصدیق به قلب باشه پس این مسلمان گفته نمیشه و از خاطر بسیار کسایی که به دین استهزاء میکنن توهین میکنن تحقیر میکنن در مقابل مخلوق سجده میکنن بر مخلوق رکو میکنن و سجده میکنن اگرچه اینا ادعای ایمان نمیگن از زیدگاه ای اسلام اینا چی هستن مؤمن گفته نمیشن یا کسی هست میگه من به الله ایمان دارم و به آنچه که در قرآن و در سنت از تصدیق دارم لكن من نظام اسلام قبول ندارم الا ترى الذين یزعمون انهم امنوا بما انزل وما انزل من قبلك شریف است آیا پیغمبر سلام دیدی کسان را که اونا میگن یزعمونه، زعم میکنن که ایمان به الله و روز قیامت دارن میبین کسایی سن که قرار با زمان و تزدیل کنید یوریدون این یا الی و قد ان یکفرو به اینا میخوان تحاکم و طاغود بکنن به کسی که مخالف قانون الله قانون میسازه و بکسی که مثل فرعون واره فرعونی عصر دعوای خدایی میکنن و میگن که ما حلالا تهین میکنیم و ما حرانا تهین میکنیم و ما خوب و بد تهین میکنیم میخنیم و یوریدون ان یتحاکمو در تاغوت و خط امیرون ان یکفرو بیهی عمر شدن که کافر به تاغوت شدن بازد وید شید دیگرم و من یکفر به تاغوتی و یؤمن به باید به کافر به تاغوت شد و به الله ایمان بیره ازی خاطر اینا باز مؤمن حقیقی نستن ببین الله جوانیم یزعمونه گمان میکنن که ما ایمان داریم به پیغمبر و ایمان داریم به آنچه که بالای پیغمبر قبل از پیغمبر نازل شده و کلش ما ایمان داریم لکن یوریدون اراده شان چیست که تحاکم و تاغود بکنن در این صورت اینی هم مؤمن گفتن نمیشه از این خاطر علما فقط اختلافشان لفظی هست در این قسمت بعضی علما میگن که ایمان اقرار به زبان است و تصدیق بالقلب است و عمل بال است. هست پس ایمان تصدیق و عمل. علمای دیگه که میگن این اقرار به زبان و تصدیق به قلب است یا فقط میگن که بعضی از اعمالی که ضد ایمان و عقیده میشه ای میگن دلالت میکنه به چی؟ دلالت میکنه به ای که تو قرآن شریف گرفتی در کسافات انداختی ایمانم با ای ایمان دارم به زبان اقرار میکنی و به قلب میکنی لیکن قرآن شریف در کسافات انداخت آیت قرآن توهین و تحقیر کرد ای چی شد؟ مگه یک کافر شد چون تو کافر شد، شما خود که ایمان اقرار به زمان و تصدیق به است، بازی ها میگن که اینمی نفره که ای کارا میکنه، در حقیقت اینمی عمل ازی ای دلالت به این میکنه که این تصدیق به قلب نداره. چرا که تصدیق به قلب میداشت، چطور جرات میکد قرآن دروی در زمین پرته؟ به می قسم اگر از پیشون پرسان شد که خب، اقرار به زبان و و تصدیق به قلب بسیاری کسای حسن که در عصر ما اقرار به زبان میکنه،, میکنه و تصدیق هم به قلب میکنند و میگه ده کافر نوشته نیست لکن با اساسات احکام اسلام توهین و تحقیر میکنند نمیخای که حکم شریعت اسلامی تطبیق شود این مسلمان است یا کافر میگه کافر است خب امی کسی که توهین کرده تحقیر کرده استهزاء میکنه و حزل میکنه به اسلام ای کافر است یا مسلمان می کافر است چرا کافر شد؟ می خواهد حضل و کرد حضل و استهیزا ای خو عمل شد ای خو با اقرار و زبان و تصدیق به قلب تعلق نداره میگه ای در حقیقت بخاطر خاطر ای هست که ای اگر تصدیق به قلب می داشت پس ای کار نمیکرد. نمی کرد. پس از نگاه نتایج هر کسی که عمل به ضد قرآن بکنه و استهیزا و حضل تحقیر کتاب الله به بود سجده بکنه اگرچه اقرار به زبان و تصدیق به قلب داشته باشه لکن به بود سجده کرد ولو امی سجدهش به شکل حزل باشه قصدی نباشه میگه تو کافر شدی خب پس در نتیجه کلشان با هم متفق هستن تنها در تعریف امی یک فرق است که او میگه اقرار به زبان و تصدیق به قلب است، و ای کارایی که مخالف سجده به و سجده بسنم یاک کس ای هم در جمله کفریات میره چرا کافر میشه میگه به خاطر از که اگر ای علامت است برای عدم تصدیق قلبی از ای. پس در نتیجه کلشان یکی هست اما در تعریف شکمه که اختلاف داشتن به هر صورت عقیده قرآنی ای را می که مسلمان واقعی کسیست است که اقرار به زبان داشته باشه و تصدیق به قلب داشته باشه و به با آنچه که الله جل جلاله امر کرده به او عمل بکنم و به آنچه که مخالف عقیده هست عمل نکنه مثل چی؟ سجده بابوت نکنه صلیب سجده نکنه سلیب درگردان گردان خدا نکنه قصدن و یا سحوان ولو که بخواهی که در یک نمایشنامه و در بین یک فیلم کار بکنه مخالف عقیده اسلامی هست خب بهم سر نقطه دیگه که, که اساسات ایمان است ایمان دارای کدام اساسات است؟ ما شما در بحث عقیده خاندهیم که اصول عقیده اسلامی چی هست؟ اما اصول ششگانه هست. اهمی اصول ششگانه ایمان اما اساسات ایمان هست دیگه. که او آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخره و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. خب نکته دیگه سرزی هست. موضوع دیگه که اسلام چی را میگن؟ اصلا اسلام در زبان عربی، با معنای تسلیم شدن و به معنای صلح است دین ما دین صلح است دین دوستی است دین محبت است ببینید عظمت اسلام دمی هست که نامش از چی گرفته شده نامش از اما حقیقتش گرفته شده به نام مسیح نیست به نام موسی نیست به نام محمد نیست به نام یحیی نیست به نام شخص نیست به نام نیست چرا اکثر ادیار دیگر ببینید بودیزم نام بودا هست. مسیحیت میگن نام مسیح. موسویت میگن نام موسا. و دروغ امی اعتقادات ساختن انسان نامای انسان ها را اما عظمت اسلام دمی هست که نامش به کدام شخص ارتباط نداره. اما نام خدا از امو موضوعی خود گرفته که او تسلیم شدن به الله جل جلوس و صلح هست که انسان مسلمان، انسان کافر باغی هست مشرک باغی هست از حاکمیت الهی بغاوت کردم. که صلح کرده به همراه الله جل جلوهو که مبندید صالح تو هستم و به همراه تو به تو تسلیم هستم این انسان مسلمان است پس اسلام دین صلح است با الله پروردگار خود رابطه داره با مخلوقاتش صلح داره و با خود و وجود خود صلاح داره به اصلاح میکشونه چون کلمه صلح اصلاح است پس ما مسلمان ارتباطش با الله مستحکم است چون به وحدانیتی از او و به اینکه او خالق ماست و رازق ماست و با تمام افعال و تمام اسماء و صفاتش اقرار میکنه و تسلیم است و مطابق از و عمل میکنه از این خاطر اسلام اسلام چی و تسلیم شدن است به الله جل جلو و منای تسلیم شدن و صلح همین اما اسلام در اصطلاح نخستین کسی که اسلام تعریف کرده اما بهترین جامع ترین, ترین و بهترین تعریف برای اسلام است. او تعریف کی کردن؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث که ایره آ بخاری شریف روایت کرده، ایمان بخاری روایت کردن و حدیث متفق علیه است مسلم بخاری اردوشان روایت کردن که هم حدیث عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است که حضرت نبی کریم صلی الله علیه و در سوالی که جبرئیل امین علی السلام از محمد صلی الله علیه و کرد که اخبرنی عن الاسلام برای جبرئیل السلام پیغمبر السلام اسلام معرفی کرد تعریف کرد و گفت که الاسلام و ان تشهد الا اله الا الله اسلام است که تو شهادت بدی که نیست هیچ کسی مستحق عبادت الا الله بغیر الله جل جلاله جل و, و ان محمد رسول الله و تو بگی که محمد شهادت بده کی یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و توقیما صلات و چی کنی نماز اقامه بکنی با بر پا بکنی با و تؤتی زکات و زکات مال تا و تصوم رمضان و ماه مبارک رمضان روزه بگیری و تحج بیت ان اله السبيله و تحج بیت الله شریف بکنی در صورت که تو به او استطاعت داشته یعنی ایمان اگر بخوایم که فرق بین ایمان و اسلام رو پیدا بکنیم حالا چی فرق از بین ایمان و اسلام از تعریفاتش اگر ایمان و اسلام هر دوش بطنهای استعمال شما یک کسی بگو تو مسلمان هستی، بله من مسلمان هستم ما نای است که اسلام تنها استعمال کردی شامل ایمان همیشه. یعنی من مؤمن هستم و من مسلمان هستم چرا بدون ایمان اسلام نمیشه؟ بدون اسلام مؤمن گفته نمیشه. اگر به تنهایی بگیم که این نفر مؤمن است مانای که این نفر هم ایمان داره و هم مسلمان است اما اگر اردوش یک جای, جای, جای استفاده شود باز ایمان و اسلام فرق میشه. اگر بگیم که ایمان و اسلام یک یک جای اردوش استعمال شود باز اونجا وقت که میگیم این نفر ایمان داره و این نفر مسلمان است این نفر مؤمن مسلمان است مقصد ما باز اینجا چی هست؟ که مؤمن کسی میگه که در اعمال قلب یعنی بخش تیوری دین، بخش عقیدتی دین او چی هست؟ ایمان است. آمان تو بالله و ملائکته و کتوبه و رسولهی من چی دارم به با او باور دارم پس این تعلق میگیره ایمان به قلب و اسلام به چی تعلق میگیره؟ اسلام تعلق میگیره به اعضای بدن انسان انت شهده ان با زبان شهادت میتی و نماز عملا میخانی و عملا روزه میگیری و عملا زکات میتی و عملا به حج میری پس بخش عملي اسلام است و بخش نظری ایمان است از خاطر ای, ای, ای دو بخش با هم یک جای میشن از این خاطر مؤمن مسلمان گفته میشه این فرق است بین ایمان و اسلام اما اگر تنهایی استعمال شد فلانی مسلمان است مؤمن هم است یکی در مقابل به جای اردو استعمال میشه دوستان عزیز بعد از که مانای اسلام و ایمان فهمیدیم یک نقطه دیگه اساسی هست که از خود سوال بکنیم که اگر یک نفر ایمان آورد و یک نفر احکام اسلام هم سر خود تدبیق میکنه آیا کسی که در خانی یک مسلمان تولد شد و ای در کشور ما و شما ببین مفهوم است که اگر یک نفر با وجود الله جل جلوه باور داشت که خالق است، رازق است و است و مسلمان است و نوشته است مسلمان در خانه مسلمان پیدا شده پس این مسلمان است ما نمیتونیم حکم ازیره بکنیم که این مسلمان نیست از دیدگاه قرآن و از دیدگاه احادیث صحیح بیغم برسالسلام برعکس از ما نواقض ایمان داریم. نواقص ایمان چی رو میگه؟ اینمی قسم که نواقص وضو هست. شما ببینین چی چیزای وضوح مشکنانه. وضوح مثلا خون مشکنانه، خروج چیزی از شرمگاه انسان. اینال اینمی قسم که نواقص برای وضو هست یک نفر وضو داره با بعضی از چیزهای وزوی ازی مشکنه پس نواقذ وضو داریم نواقذ نماز یک نفر در نماز است در بین نماز گپ میزنه نمازش چی شد؟ نمازش ناقص شد از بین رفت نواقذ روزه یک نفر در وقت روزه گیلاس آب نوشید پس روزه ازی شکست اینه میخوسم هر چیز از خود شکرنده داره و ایمان هم شکننده هایی داره که اگر ایچه شکنندهها ها را کس عمل میکنه پس این انسان از دایری ایمان خارج میشه و به صفت مشرک و به مرتد و به صفت کافر این واقع ایمان این را محاسبه کردن و خوب از برای یک مسلمان که در آغاز در سای اعتقادی خود بفهمه که چی چیزا ایمان مشکنان و سبب از میشه که انسان از دنیا مرتد و بیمان و مشرک و کافر از دنیا بره ولو که پدرش مسلمان باشه ولو که مادرش مسلمان باشه میشه اولین شکننده از شکننده های ایمان اولش چیست؟ شرک است در عبادت الله جلجاله اگر یک کس در عبادت الله جلجاله ها کسی شریک میکنه مثلا نماز نماز به نام مخلوق میخانه نماز در مقابل مخلوق میخانه و یا حرکات نماز مثلا قیام در قیام ما شما با بسیار اخلاص و با بسیار تقوا در مقابل الله جل جلاله ایستاد میشیم که در اونجا اظهار ذلت میکنیم در قیام خود در مقابل الله جل جلاله ما بنده عاجز و ذلیل تو هستم اگر امی شکل ذلت در مقابل یک مخلوق میگیره و یا رکو در مقابل مخلوق میکنه و یا سجده در مقابل مخلوق میکنن اینی رکو و اینی سجده و اینی کار در مقابل مخلوق چی میشه سبب عظیم میشه که این انسان ایمانش ناقص میشه پس یکی از نواقض ایمان چی است یکی از نواقذ ایمان شرک است به الله جل جلاله در عبادتش الله جل إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به الله نمى الله شريك بيرم ويغفرو ما دون ذلك لمن يشاء وامى ما دون ذلك شيء كه أزكى دبائن ترباشا یعنی شرک اگر یک نفر در عبادت الله جل جلاله و به مخلوق کرد سجده به مخلوق کرد قیام بر مخلوق کرد دست دعا در دا بارگاه مخلوق بلند کرد نظر به نام مخلوق کرد حیوان را زیر پای یک مخلوق زنده یا مرده کشت نظر به نام مخلوق گرفت در این صورت اینی انسان شرک شریک ساخته این مخلوق در عبادت با الله جل جلاله ام الله نای باشد و در عبادت قانونی قانون غیر الله را با ایواز قانون الله پذیرفت این مخلوق در قانون الله که صلاحیت الله از شریک سخت پس این نفر شرک آورده یه صورت الله جل جمعه که این الله لا یغفر ای شرک به الله نمی باشه کسی که با الله شرک برن و ما مادون ذالک لمن یشا اما مادون ذالک چی بنا؟ یعنی از شرک چیزی که پایین تر است گناه کبیره هست، گناه صغیره هست، اشتباهات هست، خطا هست، صحو است حرام خورده، گناه کرده، گناه صغیره کرده، گناه کبیره کرده. او را اگر برای کس بخواهی لیم یشا، برای کس دیگه او را بخشه پس اگر یک نفر فوت بکنه در حالی که دخانی مسلمان پیدا شده، این انسان عبادتی را به مخلوق انجام داده. الله ای را نمیبخشن. اما اگر این انسان دیگر گناه هایی کرده باشه که کبیره و سغیره باشه الله جلالهو جل میشه که در روز آخرت ایره ببخشه و یخفیر و مادون ندال کلمه یشه او به مشیت الله جلالهو است از این خاطر الله جل, جل, هو از. از خاطر، الله جل, جل هو ما شما را از شرک و ای که عبادت را برای مخلوق انجام بتیم الله جل, جل ما رو حفظ بکنه از اینکه که دوستان عزیز وقت برنامه ما پوره شدم نوگذر ما با هم شما دوستان عزیز خدا حافظی بکنم فقط یک نقطه را خدمتتان عرض میکنم که باقیمانده نواقص یا شکرنده های ایمانه در برنامه دیگه خدمتتان باقیمانده ماندن و خاطرش کردم تا برنامه بعدی الله جل و حافظ نگهبانتان باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته